جلسه هفته قواعد فقه سیاسی بحث ادامه‌ی بحث روش استنباط قواعد بحث تەسوف به اطلاع 4 آبان 1400 بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبی عبد القاسم محمد و علا اهل بیت طاهرین المعصومین سیم و الله فی الارضین روحی برباخ و لعالمی الفدا. در بحث روشناسی بحث از قواعد بودیم یه مقداری بحث رو پیش بردیم یه تکملایی داریم البته من میخواستم سریع ترز کنم در بحث تمسک به اطلاق و امومات برحال به که از سیترین راه ها و روش ها بودیم اشارتی به اطلاق داشتیم بعضی از فقرات رو که در خلال فرمایش بعضی از بزرگان هست من میخواهم برجسته بکنم برای این روش اطلاق بیریم چند فقرات از بیانات مرحوم آیت الله سید محمد باقر صد رضوان لا تعالی علیه مورد تمسک قرار میدم از بحث کتاب شرف بروسن فی شرح ال اور و که خب از اول بحث فقه شروع فرمودن یه نکته مهمینه که ما چگونه اطلاق گیری بکنیم یکی از نکات اساسی و مهم در بحث اطلاق گیری اینه که از منظر شهید صدر حالا من چند نمون رو ارزوم یکی از نکات اساسیش اینه که ما باید نگاه بکنیم به مناسبات ارتکازی مناسبات عرفی ارتکازی در واقع اگر شما در فرمایشات شهید صدر مرور بکنید تمسو که به ارتکاز برای شناسایی اطلاق و تقیید اهمیت کلیدیگ داره در واقع مرحوم شهید صدر از طریق تحلیل و شناسایی و تحلیل ارتکاز به این دو امر کمک میکنن از منظرشان اگر ارتکاز اگر ارتکاز عرفی در مقام باشه میتوان در واقع خلاصه ادعای وجود اطلاق کرد چنان برعکس اگر اگر ارتکاز قرفی و حاکم در مسئله برعکس باشه بیانگرد در واقع حاوی یک تقییدی باشه ما به در تمسک خلاصه به اطلاق ظاهری دچار مشکل خواهیم بود و باید حکم به تغییر بکنیم ایم. یک فقره رو من عرض می‌کنم خدمت شما ایشان خب این بحث ها هر کدام در لابلای مباحث فقهی است در بحث هیتان مسجد ایشان بحث می‌کنند میفرمایم فرمایم فهمیه جملهی فمنالواز ان موضوع حاضر دلیل لایشمول لایشمول مالکن من قبیل المسجد و تعدیه اینما یکون به مقدار ما تختزیه المناسبات الارفی ارتکازیه و هوا لایشمول محل کلام آیا اون دلیلی که وجود داره یک ظاهری داره اگر ما بخواییم از اون مورد اطلاق گیری بخواییم کنیم از اون مورد تحدیب کنیم و اون مدن و نص روایت یا آیه رو شامل موارد دیگه بگیریم این باید با حمایت ارتکازات عرفی باشه تحدیب از اون مورد بر اساس مناسبات ارفی ارتکازی است و مثلا در فلان بحث در این بحث می که نه شامل این است و تعدیه نما به مقدار ما تختزی المناسبات ارفی الارتکازی هم. این یک نکته نکته بسیار خب اساسی اینه که در فرمایشات ایشان دائمان ایشان تمسک به این ارتکازات میکنن طبیعتن شناخت ارتکازات اهمیت کلیدی داره و ما اگر بخوایم خلاصه ارتکاز رو بفهمیم باید دقت خاص خود شروع کنیم در واقع برای استظهار ما این زاویه این سوال رو باید همواره داشته باشیم که این استظهار ما بر چه اساسیه در جایی دیگه من حالا در خود ارتکاز توضیح از فرمایشات ایشان بخوام بیارم ای این مورد قبلی رو عدسش رو عرض کنم جلد چهار بوزنفی شرح اربت الوسقا صفحه دیسو بود در مورد خود ارتکاز جاهای مختلفشان این رو بر جسه میکنن در همین شرح اربت الوسقا یه مورد رو من در جلد سه صفحه سی سد و شونزه ارز میکنم ارتکاز رو ببینید اگر ما بخوام تمسک بکنیم و طبیعتاً یه پیش هایی داشته باشیم آیا ارتکاز قابل تمسکه قابل تمسک نیست در واقع تمسک به ارتکاز مبتنی بر پیش برس, پیش برس هایی که اگر ما اونها رو قبول نکنیم ممکنه در بحث ما خلال ایجاد کنیم یکی از این موارد چیه؟ اینه که از منظر شهستت اینه که ارتکاز به مسابه قرینه متصل داره کار میکنه خب قرینه اگر شما متصل باشه یا منفصل تفاوت داره قرینه متصل خب نقش کلیدی در همواره در همه موارد در در واقع استظهارات خلاصه از نصوص و الفاظ و هیئت ترکیبی و هیئت اون خلاصه فرد مفرده یا هیئت تفر مفردات یا خلاصه یا هیئت تعلیفی موجود در نصوص همواره نقش کلیدی داره و اگر اون قرینه متصل نباشه متفاوت خواهد بود بنابراین قرآن متصل همواره در این استثارات مورد خلاصه تمثل قرار میگیرد و از منظر عرفی این جایگاه خاص رو داره از منظر عرفی حددارای حدجیت عرفی است این <تصفيق> فدمه شما ارز کنم ببینید؟ از منظرش فدمه شما ارز کنم در تفسیر ارتکاز به هر حال ما باید دقت کنیم ببینیم ارتکاز چه نقشی داره اگر ما این پیشباز رو قبول بکنیم در این غری... به مسابقه قرینه متصل عمل میکنه در صفحه 316 از جلد سهشان در یه بحثی تمسک میکنن به ارتکاز و سیره و در یه فقراتش میفرماید که مثلا کل زالکه یج علومن المعکد ان یکون حکم المخالفین منحازه نهی امرن واضحن مرکوزن فی از خان الموالین به حاضر یعنی انهو کان اهد الامره مرکوزن فی ذهن المتشردهی الام الا نظرن الا طبیعت المساله و اهمیتها خوبی هر مسئلهی در فضای خاص خودش یه ذهنیت عمومی رو به دنبال داره ما بر اساس اون ذهنیت عام متشرده ای که مثلا در یک بحث هست مرکوز رو اون مرکوز ذهنی رو به دست میاریم مثلاشان در اون بحث میفرماند و علیه فایلم لم القطع در نل مرکوز کانه و اسلام المخالفین و تهارتون فلا اقلم احتمال ذالک به نحو موتدن به به نحو موتدن به له و یوجب احتمال القرینيه المتصله موجب اجمال الروايات المذكوره لان الارتكاز من قبيل القرائن المتصله تو این بحث از حکم مخالفین حکم عام میگن یعنی آقا اینجا یک مرکزی وجود داره یک ارتکاز ذهنی وجود داره خب اون بحث مستاقی کار نداریم نکته کلی اینه که این ارتکاز ماهیتش اینگونه است که از قبیل قرائن متصله است بعد می‌فرمائند که حالا تو اون مورد چون احتمال قرینیت هست در بحث اصول ما اثبات کردیم که احتمال قرینه متصله معتضم به موجب اجمال میشه احتمالش هم تاثیر داره خب پس در واقع ایشان اینجا یک بلالت خاص خود رو در واقع پیدا می‌کنن و با تمسک به اون میخوان یک نتیجه خاصی رو بگیرن بنابراین این اهمیت داره اگر ما میخوایم مثلا اطلاق رو فهمیم باید ببینیم که در این چیست اینجا ارتکاز چیست ارتکازی که خدمتش رو کنم میتوانه یک جایی اطلاق شکن باشه یا اطلاق ساز باشه خب این دو گونه خلاصه میتوانه اینجا محل بحث قرار بگیره و در واقع ما ارتكازات در واقع اطلاق ساز و معید اطلاق رو میتوانیم اینجا محل توجه قرار بدیم حالا در بحث بعدی که اطلاق شکنی و تقییده اون هم جای خاص خودش رو داره چونان که حالا در تعبیر دیگه هم در کتاب مباحث و اصول در تقریرات از بحثشان مثلا در مورد وضوح هم همینطور گفته شده که وضوح یکی از قرائن متصل به کلامه و سایر موارد در حال ایشان بحث رو دارند که مثلا در جایی میگن که اه, آه یا ما باید قرآنه متصله داشته باشیم یا راه دیگه ای داشته باشیم قرآنه منفصله داشته باشیم که یک معنای خاص رو افاده بکنه پس در واقع قرآنه منفصله یه حکمی دارن قرآنه متصله یه حکمی مثلا در قرآنه منفصله شان جلد یک صفحه 329 در خلال بحثشون میگن که مثلا راوی غیر ملزم به نقل قرآنه منفصله بله نه هم ازا کانال کلام سال زور و فیون فعلی فلسطف هام ام مدنم فنفس و اصالت و زور تنفی وجود قرینه تن منفصله ما از یه راهیه میتوانیم نفی قرینه منفصله کنیم حالا اون یه بحث دیگه است در مجموع دلالت ارتکاز اینجا اهمیت خاص خودش رو داره و ما میتوانیم از این طریق خلاصه به خب خلاص کشف اطلاق یاری برسانیم این یه بحث جدیه خب این مورد دیگه ما داریم بحث پس این یه محور که تمسک به با توسعه عرفی و با تحلیل ارتكازات از این استفاده کنیم نکته اساسی دیگه در بحث اطلاق گیری و روش اطلاع اینه که در مقام بیان باشه خب این دیگه یه سخن رایجی است که معمولاً در لا مباحث مطرح شده و میشه خداسه بهش تمسک میشه و نکته اساسی اینه که ما این وقتی که میخوایم بگیم اطلاق داره یا اطلاق نداره همینطور نمیشه بگیم اطلاق داره نداره باید تعلیل بکنیم اگر می خوایم بگیم که اطلاق داره باید بگیم آقا مسوق برای بیانه در واقع جمله به گونه ای شکل گرفته که معلوم بشه دنبال بیان چه چیزی است اگر بخوایم ادعای اطلاق بکنیم برای در واقع برای ادعای اطلاع باید خلاصه قرائنی پیدا کنیم باید با تکیه بر قرائنه داخلی یا خارجی نصوص معلوم شود که خلاصه گوینده گوینده سخن امام معصوم باشه یا خدای متعال باشه معلوم بشه که گوینده در مقام بیان مثلا مطلق بوده یا خلاصه نفی اطلاق بوده حالا اگه در مقام باشه این تأثیر داره در برخی موارد میتوانه از یه حیث در واقع اطلاق داشته باشه اطلاق میتوانه از یک جهت خلاصه یک جهت یک یا چند جهت باشه بنابراین از این جهت ما باید بگیم که در هر کدام از موارد مورد بس اگر خلاصه گوینده در مورد محل تأمل خلاصه در مقام بیان باشه ناظر به موردی که محل توجه ماست اونجا خوب خوبه اینجا امکان تمسک به اطلاف در اون جهت هست وجود داره اما در سایر موارد که در مقام بیان نیست امکان تمسک فراهم نیست. ما مثلا اطلاق افرادی داریم اطلاق احوالی داریم بستگی به موردش خلاصه داره یک تحبیری بخوانم یک جایی رو مثلا مرحوم شهیستر جلد چهار صفحه 291 میفرمائند که اگر ما مثلا ادله لفظی رو در بحث بخوایم در فلان بحث مبد نظر قرار بدیم در بحث وجوب تطهیر معتبر روایت ابن روایت علی ابن جعفر داریم و روایت حلبی بعد میگه مثلا روایت علی ابن جعفر اطلاق نداره ول اولا لا اطلاقا فیها چرا چون که شما میتونه ادعای اطلاق کنید یه کسی که ادعای عدم اطلاق کنه هر کسی وقت برای خودش خلاصه مستند بیاره کسی که میگه اطلاق داره باید بگیم در مقام بیان فلان مورد بوده کسی هم که میخوا بگه اطلاق نداره باید با توجه به مختلف بگی که نسبت به اون مورد در محل بیان نیست در مقام بیان نیست ولی اولا اون رو باید علیبن جعفر میگه لا اطلاق فیها لعدم کونه ها مسئول خطن لبیان وجوب تطهیر ابتدائن له یتماسک به اطلاقو میگه این تو این بحث ما وجوب تطهیر این رو با این کار نداره خب روایت دوم هم میگه فلا اطلاق فی دلیلن کونا منال خب بعد میگه که و ثانیه غایتو ادلال علی حرمت تنجیس لا وجوب تطهیر حرمت تنجیس رو میگه اما با وجود تطهیر کاری نداره این دو در مقام بیانون دومی نیست این یه مورد مورد دیگه در این بحث صفحه جلد چهار صفحه دیوی و هفته چهار میگن که خب عمل اول فوازون لکونه عدله لقبیه بله قبلشو ارز کنم در اون احتیاطیه میگه که واجب سزاوار که یه احتیاط استحبابی داشته باشیم چرا؟ چون که یک اطلاقی اگه ما اینجا داشتیم خوب بود ولی میگه یوشکل و اطلاق قال طرف الخارج اطلاق داشتنش برای فلان بست فلان مورد مشکل داره چرا؟ چه فهم نمیکنه؟ مدرکش اجماع باشه یا معتبری علی ابن جفر یا روایت حلبی یا مورد دیگه اجماع میگه لبیه دلیل دوم میگه و اما فل انل ارتکاز المکتشف زمنن لیس له اطلاقون خب ما قرار شد بریم سراغ ارتکاز میگه آقا ارتکاز اینجا چیه؟ اول یک ارتکازی که اینجا به صورت زمینی کشف کردیم ما تو اون مورد بعد میگه این ارتکاز اطلاق نداره لئصلله و اطلاق اون به ان ن لم روایت دنبال این موضوع نبوده بر مقام بحث دیگه ای بوده خب پس ازش ما نمیتوانیم استفاده بکنیم خب این یک مورد دیگه در مورد دیگه هم شبیه همین بحث جلد چهار صفحه دیویست و هفتاد و چهار یا به همین مورد بود اه. یه بحث دیگه که ما اگر ببینم مورد دیگه در نظر گرفتم برای این قسمت خب فعلا با این کار نداریم پس اگر بخواییم اطلاق و ثابت بکنیم همین رو باید در بیاریم مورد دیگه در کتاب شریف اقتصاد و نام ایشان می فرمایند که عراب دعو دلالت عمومات اموم و, و اطلاقات و سه حتل اجار علل مطلوب در بحث اجاره است بعد میگه که صفحه 733 از اف الازالک امکانت تشکیکه فی وجود اطلاقات این فی عدلق الاجاره در عدل اجارات ما اون اطلاقی تو توانیم قبول کنیم لأن الاخبار الباب از صحیحه اون روایت صحیحه باب لیس فی ها مایکون و مسوقن لبیان اصل صحت الاجاره به قول مطلق لیوما لیوتا مساک به ادلاغ ها این مواردی که هست نسبت به صحت اجاره به صورت مطلق دلالتی نده مسوق برای بیان این نیستند بنابراین این ما نمیتوانیم از این استفاده کنیم خب و بعضی موارد آیات رو شریفه رو میگن مثلا اوفول عقود میگه لزوم رو دلت میکنه اما صحت رو کار نداره و, و او تو اوفو بل تدل حلل لزوم ولا تدل سهح باید وفاای به عق بکنه اما لو وفا به ع این عقد شما صحیه نهبا این کار نداره لا مطابقتتا لا مطابقتتا ولا ارتظامند نه به صورت مطابقی نه به صورت الارتظامی دلالت نداره پس این تعبیر لا مطابقتم و ارتظامی هم شما در نظر داشته باشید که اگه ب یک چیزی دلت داشته باشید یا دلت مطابقی یا ارتظامی و قول الان تکونه تجارتا انتازن میگه این اختصاص به تجارت داره و مخت به تجارت و هیه ظاهلت هم و به شررا به شرایه خب سایر عقود چی؟ علاش تشمل مطلقل عقود التمليكيه مطلق العقود التمليكيه با سایر عقود کار نداره این فقط داره میگه تجارت ان داشته باشید خب پس غیر تجارت چی؟ با غیر تجارت کار نداره پس اطلاق نداره اصلا مسوق برای بیان همه عقود نیست بنابراین یک نکته اساسی در اطلاع گیری اینه که در مقام بیان باشه خب این یک مورد مورد دیگه اگر بخواب در واقع ما بهش بتوانیم برای اطلاع بهش تمسک کنیم یکی از موارد در واقع مهم موارد مهم در اطلاق گیری اینه که خلاصه اون مورد که مورد از محل استعمال خارج نباشه اگه چون این موردی باشه در واقع یه جوری خلاصه انصراف یعنی صرف و انه اون صرف انه در صورت خلاصه خروج از محل استعمال خلاصه انصراف شکل میگیره و در واقع متوجه و موضوع نیست به خود اون موضوع خارج از بعض قرار خواهد گرفت خب یه مصداق برای نرس کنیم همون فقراتی که خاندیم که یه موردی داره صف جلد چهار صفحه 274 و, و اما رابط ولی انه تطهیر عنوان البیت ارفن لایش ملاد طرف خارجی خب شما در مطر میبین مثلا گفته آقا فرض کن بیت رو تطهیر کن تطهیر, او تطهیر بیت ارفن میگیم بیت رو تطهیر کن ارفن شامل داخلشه اون طرف بیرونی دیوارای بیرونش رو نمیگن خانه رو تمیز کن اگه بخواه اون رو بگن و اکسا اون از محل استعمال خارجه نه. با اون کار نداره شما نمیشه به اطلاق اونو تمثب بکنید فلایجب فلا و تطهیر از طرف خارجی لهو لخوروج عادتاً از محل استعمال فلایجب و تطهیر از طرف خارج من المسجد مالم یلزم من ترکهی الهانه والحد که محرم حالا اب نداره ممکنه عنوان دیگه تو بحث بیا به عنوان دیگه شما بخواید برید در واقع اون مورد رو پاک کنید تطهیر کنید اون یه بحث دیگه است صدقی عنوان دیگه که ما کار نداریم بلکه نیاز داریم که خلاصه تو یک بحث الان ما اطلاقمون کفایت بکنه نکنه اصلا این انصراف داره نداره این بحث اهمیت داره بنابراین ما هر موردی رو خلاصه نمیتوانیم بپذیریم خب اینجا یک بحث دیگه داریم اگر ما بخوایم در واقع نفی اطلاق بکنیم به مقابلاتش تمسک میکنیم از طریق اشاره شد مناسبات ارتقازی خب اینجا ما در تکمله این بحث این عنوان رو هم میتوانیم محل توجه قرار بدیم بحث مناسبات حکم موضوع در این موارد اینجا موردی را خب ارتکازات اغلائی و ارتکازات اجتماعی حاکم یک خروجی و یک تأثیری داره بین موضوع و محمول یک مناسباتی در عرف شکل میگیره اینگونه نیست که مردم اصلا بین موضوع و محمول هیچ نسبتی رو قائل نباشن باید معمولا در اون مناسبات یک تناسبی باشه اگر اون تناسب وجود داشته باشه بر اساس اون یک ارتكاز و یک فهم اجتماعی شکل میگیره در واقع وجود مناسبات خاص بین حکم و موضوع است که میتواند در واقع تقیید یا اطلاق رو برای ما به ارمغان بیاورد و خلاصه ما رو به اونها رهنمایی بکنه این مناسبات مختزی شکلگیری یک فهم ارتکازی عرفی و به تعبیر دیگه فهم اجتماعی خواهد بود از این جهت ما با تمسک با کشف با توجه به این فهم می توانیم خلاصه اون مناسبات رو کشف کنیم و به اونها ترسو کنیم برای, برای کشف اطلاق یا تقیید به اون موارد ترسو کنیم من موردی رو از کتاب تقریر بحث از شهید سعد بحث قاید لازرار و لازر، لازرار و لازرار میارم صفحه دیویس یه بحثی داره الامر الصائن المختار فی معالجه تخصیص الاکثر. سی میدن میگن که این لزوم تخصیص اکثری که مستهجنه یکی از اشکالات جدی است. بعد تو حالا اون موردشون میگن که آقا این مورد تخصیص اکثر چه موقع حاصل میشه وقتی که ما به ظهور و ظاهر کلام توجه میکنیم این کلام خواست و بعد میگییم ماقا اینا مطلقه ولی ما توجه نمی کنیم به اون مناسبات و ارتکزات اوقلایی اجتماعی اگر به اونهاک بکنیم توجه بکنیم خواهیم دید که اینجا این چون این قید وجود داره الامروزانی المختار فی معالجة تخصیص الاعتر من الاشکالات الاساسیات لاتی اصیلت حول هازل قایده لزوم و تخصیص الاعتر المستحجان این تخصیص اعتر از کجا حاصل شده و هازل مشکل این نمادان جمله و اکنون بزرگ الابلیل کلام و جامعه نه علی حاق الاتلاقات ثابت به هازل جمله ی مقاله جمله مشکل این اطلاق به صورت مطلع خلاصه به این تحجب کنیم مندون تحکیم انصار مناسبات الحکم و الموضوع و الارتکازات الاقلاعیه و الفهم نصر شما ببین این نصر خب یه سر قرائن در داخل مد هست اما یه سری قرار کلی هست مناسبت حکم موضوع هست ارتکازات اقلائی هست ارتکازات اجتماعی هست شما اینها رو هم باید لحاظ بکنید تا بتوانید و فهم رو درست انجام بدید فعنه او یمکنن یقال این نهازه القاعدت تنفی کسی را من الاحکام فقی از ثابته مثل قصاص و دیات و ز... از مالیات و از و المالیات و بعضی از عبادات فیالزن تخصیص حاضر قاعده فی الموارد و علتیه از آف و مایب قافی ها ولما کان تخصیص و الامفی اکثر مدلوله غیر جازم فیالتوجه و الوحن و الالام این مشکلات ایجاد میشه حال با اینا کار نداریم میفرماید که صفحه ریسو هجده میفرماید که اینجا ما نمیتوانیم به این اطلاق تمسس کنیم الا ان الاختصار و علا مثل حاضر اطلاق غیر صحیحه چرا؟ چون که قرائن دیگه ما داریم قرائن لبی داریم قرائن حالی داریم اینها باعث تخصیص و تقیید میشه شما قرائن هاری و و رو بر اساس مناسبات حکم موجود موضوع در نظر بگیرید اگر مناسبات حکم موجود موضوع رو در نظر بگیرید به مسابقه قرائن لبی و حالی که کلام محفوظ به اونهاست شما یه نتیجه میگیرید که آقا این اطلاق نداره الا ان الاقتصار علا مثل حاضر اطلاق غیر و صحیحه چرا؟ لنو هینمو یقان لازرر من ناهیت شرعیه لازرر من ناهیت شرعیه فحاضر اضافه المستفاده من تلک القرین لبیه و الحالیت التی تقدم کلام انها ون قرانه لوپیه مقامین توتی نوع ان من تخصیص و تقیید چگونه این تخصیص و تقیید رو ifade میکنه ل مفاد حاصل جمله به حسب مناسبات الحكم و موضوع خب چرا اصلا چرا باید به اینا توجه کنیم شما میفرماید که آقا شما باید برید ببینید مرکوزه در ازهان عقلایی چیه مثلا در این بس بحث ادالت اجتماعیه یه نظام ها و تشریعاتی داریم که این نظامات و تشریعات به دنبال تحقق بخشیدن به ادالت اجتماعی هستن اینجا اینا محل توجه هستند در ازهان عمومی و در ارتکاز عمومی اینا وجود دارن که چون این مسئولیتی وجود داره از این تشریعات از این قانونگذاری های فردی و اجتماعی ما نمی‌توانیم دریخ کنیم این مناسبات و حکم و موضوع است که در اینجا بر اساس این نگاه به مقوله قوانین و قاعده ها و ضوابط اجتماعی محقق عدالت اجتماعی شو بهش توجه کنید بعد تا بفهمید که این ضرری که اینجا داره نف میشه چگونه است؟ فانل مرکوزه فل از هان القلاي آنل مقاومت هل اصلی ل اجتمال و عل قوانین و ان و تشویات تو هر بغل اداله اجتماعی ل ناز این مرکوزاتی داریم به اون مرکوزات توجه کنید و خازل مسئولیت اساسیه ال لطی اول قیت عل آت این مسئولیت اساسیه ور دوش شریعت آت دوش این گذاشته شده اللقیت ال عاطق شریت حقت عادلم خب این اهداف و این مسئولیت چگونه قرار اجش اجرا در بیا و تحقق پیدا کنه در ارتکذ ومین است که اینها خلاصه از این اهداف این مسئولیت از طریق یک مجموعه قوانین است قوانین چه فرد اجتماعی و من الواز نه تحقیق ذاله لا لایکن اام من خلاله مجموعه من التشریعات و القوانین الفردی و الاجتماعیم التی توحد به دل ناسه ما لهم من الحقوق و ما علیه من المسئولیات و الالتزامات خب و لا یمکنن یقال انا مثل حاضر تحدیدات سادر و نشارل افضل زررون الناس خب یه قوانینی هست اگر شما به این اطلاقش تمثب کنید یقال لا زررم هیچ ضرر خدا قبول نکرده آقا ما همه می‌بینیم یه قوانینی هست حال قوانین یه دوشواریاری داره یه ضررایی میاره اصلا آیا مردم میتوانند بپذیرن که این تهدیدات به این معنا ضرره پس باید اینا رو جمع کنیم بله ظاهرش ممکنه یه ضررهایی باشه ولی علی باطنش چیه؟ یه سعادت مسائل حقیقیه. خب یه پاراگرافیه که دو پاراگراف مفصلشان دارن اجمالاً دستتون میاد که میگن الهازار اونا رو نمیخونم. محتواش اینه که آقا خلاصه یه ضررای اینجوری بخواید کنید نمیشه. باید توجه بکنید به سلام دلیکم باید توجه بکنید که خدای متعال تشریعاتی داره، یه اهدافی داره. ظاهر بین نباشید که بگی آقا این این خلاصه سارق رو ما اگه بخوایم خلاصه قصاص کنیم جانی رو قصاص کنیم این ضرره، نه باید در مجبوبه ببینید نتیجه اینه که علا حاضل اساس فضل زرر لذی یکون و معدیان لا تحقیق تلک المسال اجتماعی و فردیان لا یکون منفیان به مثل حاضل عبارت شما به ظاهر عبارت بخواید نگاه کنید عبارت بسند باشید لفظ بسند باشید یه مقولیه نتیجه گیری میکنید ادعای اطلاق میکنید ولی اگر قرائن عرفی و مقامی و حالی و ارتكازات اجتماعی رو فهم عام رو از این در نظر بگیرید میبینید که این مطلق اراده نکرده که هیچ ضرری نداریم بلکه معنای خاصی است مراد غیر از ضررهایی است که خلاصه از قبیل این احکام عالی و احکام متعالی خلاصه به دنبالش میام الهاز اساس و زرار از کن الهزی یکون معدیان اله تحقیف و تلک المساله اجتماعی و الپردیه لا یکون منفیان به مثل زل عباره پس این عبارت لا رو باید مقید بفهمید فهم عرفی میگه خب خود قوانینی که خود اسلام داره میاره اینا هم زرریه. اگر بخوایی ظاهرش رو بگیریم میگه دست دز رو قد کن خود ها این ضرر پس اونجا میگه دستشو قطع کن اینجا میگه لا زرر اگه بخواییم مطلق بگیر اونها رو باید نفت کنیم در صورت که این درست نیست پس لا یکون منفی هم به مثل حاضر عباره اینجور زرر ها مد نظر این نیست بلل منفی به ها چیا نفت شده ولو ظاهرش آمه بلل منفی و به ها و ظالق از زر و یکون خارجن ان حریم تلک المصاله المرکوزفل از هان الاقلایه غیر از این زرر حمد نظره این جایی که پای مساله عالی دنیاوی و اخروی هست و اینها در از هان اقلایی در ذهن عمومی اینا خلاصه ارتکازی است که احکام الله دنبال یک مساله است نتیجه چیه؟ فمناسبات الحکم و موضوع اجتماعی او ما نستلا علیه بلفهم الاجتماعی لنست تقت ازیف المقام این یکون المقصود من از زرار المنفیق غیر تلکل ازرار يراد یوراد منها تفخز علا تلکل مسود پس آخو شما حق ندارید اینجا مطلق بفهمید چگونه با چه روشی قید میزنید با تمسک به ارتکازات بعد میفهمند در حدود، در قیاد، قصاص، در دیاد و سایر احکام که ضرری هستند ولو اینکه یه ضررهایی رو به دنبال داره برای افراد به صورت و این ضررها حقیقی است اما وقتی که به, به شریعت و اینها توجه میکنیم میبینیم که این احکام به شاره نسبت دارند بعدم از یه طرف شریعت هم داره این روایتم داره نفی زرر میکنه چی میفهمیم؟ بنابراین الان ما زکرنا در این موارد نستکشفه به مناسبات الحکم و الموضوع القائم علا اساس ارتکاز ان شریعت صلاحیت ها به انتکونه فی مقام تحفظ علال مسال نوعیه انه حاضر زرر ال... حاضر زرر منفیه لا یمکنه شاملا لحاظر احکام زرریه این لا زرر دیگه احکامی که به جهت خلاص قلبه اون مساله جلب شده مد نظرش اینها نیست بنابراین میخواه بگه آقا این تخصیصات در واقع تخصیص قاعده اون قاعده که محل بحث بوده نیست به اون تخصیص نمیزنه آقا شما میگید استهجان به وجود میانه آقا اینا اصلا چون نباید لحاظش بکنید این ضرره نیست بنابراین اینا شما اون جمله ای که آقا تخصیص اکثر پیش میار و نیارید بگید که آقا ببین اینا این تخصیص اکثر به دنبال داره اصلا اینا مراد نیست خارج از بحثه اینو عرف چی میفهمه میفهمه که اصلا نبارد اینا در نظر بگیرید و حاضر نکته کافیت فی مقام بیان ان اکثر ما زکرم من حاضر تخصیص لیست هیفل حقیقه تخصیصا للقاعدم اون تخصیص اکثر هجین است به اون رب نداره این خود به خود خارج از بحثن و این نماهی خارجتون تخصصن و مابقی امنت تخصیصات لخراف و یه طبیعیتون سایر تخصیصات نداره اونایی که مناسبات اجتماعی و ارتكازات و اغلایی خارج از بحث اعلامش کرد اون رو خارج تخصصی بگیرید و یه طبیعیاتون یم کنن تا علاوه ای قاعده تنقض و اون بقیه تخصیصا و لیست حیا بالقتل الذي تحت ظهورها و توج بنفیکون قاعده عامه خب پس ما اینجا دیدیم که باید روش اطلاق گیری و نفی اطلاق رو توجه بکنیم مورد دیگه که اینجا میخوام بحث رو جمع بکنم یکی دو مورد اینه که مورد دیگه خب این علطه علل مبناست. این که گاهی اوقات اطلاق داره ولی نمیشه ازش استفاده کنیم آقا خب این همه ما دعوا و مرافه و روش شناسی که اطلاق رو قبول کنیم یه جای همین شهیست میگه اطلاق داره ولی نمیشه بهش توجه کنیم چرا؟ چون که یه شرطی هم اضافه میکنن باید خطاب فعلیت داشته باشه حالا یه مورد در بحث شاک و غافل و اینها میگه خلاصه اضابونی علال فرق بین شاک و غافل من ناهیت من ناهیت اطلاق الخطاب لل اول به دعو قابلیت شاکل تبرد ولو ان احتمال تکلیف شاک فرق میکنه به غافل خب پس آقا تو غافل چه کنیم؟ به خلاف الغافل سهت و من القافل او زوهی نزه من سهتا من ل لعدم فعلیت خطاب فی حق القافل حتی مل التزام به اطلاق عدلت وجوب تطهیر لشاک باشه عدل اطلاق داشته باشه ولی اگر در یه موردی اصلا خطاب فعلیت ندارد مثل قافل این قافل دیگه بذارش کنار با شاک فرق میکنه شاک احتمال تحرک داره وله او احتمال تکلیف بده اما قافل دیگه اصلا قافله دیگه پس صرف اطلاق اینجا کافی نیست خب مبنای حضرت امام چیه؟ خطابات قانونیه اصلا قافل و قادر و آجز و اینا فرق نمی کنن خطاب برای افراد خاص جعل نمیشه. پس طبعه مبنای نظریه انحلال میگه آقا اینجا اگر غافل باشه اینجا ما نمیتوانیم به اطلاق تمسک بکنیم ولی چیه در شاک مثلا میتوانیم اما طبیعتا نظریه خطابات قانونی میگه آقا این برای همه است یه مورد یه مورد دیگه که آخر بحث این در این بحث میخوام عرض بکنم بحث محزور سبوتی و اثباتی ما موقعی میشه به اطلاق ترست کنیم که محضور موضوعی یا سبوتی و, سوبوتی و مو... چی نداشته باشیم در ادامه همین بحث ایشان دارن اه... حالا بعضی عبارات رو نمیخوانم اه... یه مقدار در توضیح این بحث میگه و این نمل محضور فشمول للقافل یعنی شعن من ظهور الخطافی کونهی ابرازون للهوک ولی تلک المبادب به دای تحریک المکلف لول مجرد اعلامی ای بها. آقا این بندی خود غافل یا محضل صوبوتی داره اینجا قرار از خطاب برای کی باشه قراره برای ابراز باشه خلاصه تحریکاور باشه مکلف رو رابی اندازه نه اینکه فقط اطلاب اطلابش بده خلاصه اینجا میگه یه جایی ما این مفادشو که میخوایم تحلیل بکنیم باید تحلیل مفاد عرفی بکنیم بعد میبینیم مکلف گایی قد آجزه گایی قد قادره گایی قد... نه چنین نیست فعیم کانم مفاد زالک زورال افری قصد ان یکونل خطابو محرکن کل من یشملو فایستحیل ان یکونل شاملن للآجز وللغافل وللمعتقده بالعدم این نسبت به اینها نداره بنابراین یه عباراتوی رو نمیدازم فلمیزان و فیشونو ختاب لفردن ان یکون ممن یعقل و یعقل و تحریکوهو بالخطاب علا فرض وصوله علاق اگر ما فرض کنیم بهش برسیم خب چگونه است؟ یک موردی هم از مرحوم ناینی اشاره کنم مانیت و طالب اشان عبارت رو پیدا کنم بیفرماند که آقا در مقام اصل تشریع نباشه یکی از شرایط تمستو به اطلاق یعنی که در مقام اصل تشریح نباشه یعنی چی؟ یعنی در مقام بیان باشه وقت زکر نافل اصولا ان شرطت تمستو که به الاطلاق ان لا یکونال حکمو فی مقام اصل تشریح کل اوامر الوارد فی الکتاب المتعلق بالماهیات اقیم و سلات آت و آت الزکات و کلوم ما امسکنه اینا فا اینه هون مسوقتون لحلیت مستاده ها المعلم،, المعلم فلا یمکنه تمسته به اطلاقی پس باید مسوق در مقام بیان باشه نه در مقام اصل تشریع حالا مصادیقی هم میگن تعبیری هم دارن به خاطر این عبارت من اووردم اون رو نه هم لو اخترنا مختاره ها المشهور قبل سلطان اگر ما اپنا اصولی پدما رو بگیریم که چی؟ من آن من آنل مطلقات موزو لا به شرط القسمی به ام تاکون موزو عت لکان ل به اطلاقها ها مالمیو الم مجالون. اگر بگیم که مطلقات برای ماهیت لا به شرط قسمی جعل شدن و وضع شدن اینجا میتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم اگه قید داشت داشتیم قید پیدا کردیم اب نداره اما اگه قید پیدا نکردیم مالم یعلم ها، اینجا اگه قیدی رو سراخ نداریم میگه مقا دیگه چرا؟ چون که این مطلق برای ماهیت لا به رسمی جهل شده بعد پشت سرش یه یغالی یوغال، هم میگن میگن که نگید که گفته نشه که متکلم در چه جوری با تم... با اس... به اصل عقل اغلائی... و اصل عقلایی متمسد میگیم آقا در مقام بیانه حتی اگر مبنای ما قبل سلطان رو بپذیریم سلطان العلماء رو بپذیریم اینجا باز نمیتوانیم چرا؟ این نکته اضافی داره لنم مورد تقیید این نما همه فیل عموم البدلی لا ش... لا شمولی، پس تفکیک که عموم شمولی و بدلی میکنن حتی مبنای اون بزرگواران قبل رو هم قبول بکنیم میگه آقا تماسیب به اصل و نکنیم چرا؟ چون؟ اینجا یه مش تفکی بین امور بدلی و شمولی هست. حالا ولو که اینجا ممکنه بگیم که خیلی مشکل. این البته این قسمت در توضیح اون‌ها بود. لئن نقول انما لا يحمل المطلق على المقيد فل العموم الاستقرایی مطلق در مق... در عموم استقرایی بر مقاید حمله میشه ازالم یک کنه المقایدو فی مقام تهدید و الاحتراز اون مقاید اگر در مقام تهدید باشه یه تأثیری داره و الله اینجا میتوانه مثلا محل سوال محل بحث یه چیز دیگه باشه و خلاصه خواستم ارز کنم که اینجا مواردی هست که این یه ریزه کاری هایی داره این، گایو قادر ما خیلی راحت میگیم که آقا این حکم به خاطر این است چرا؟ چون که للمطلقات آقا مطلقات رو اولا باید احراز بکنی که مطلق همین گونه نیست تازه یه جای مبانی هم تأثیر داره ثانیه یه قوید و شروطی هم ممکنه باشه که خلاصه ما رو از پذیرش اطلاع. خلاصه ناامید بکنه به راحتی نتوانیم چنین احکامی رو به دست بیاریم یکی دو دقیقه استراحت بفرمایید الحمدلله رب العالمین و صلوات و سلام و سیدنا و نبینا حضرت قاسم و علی اهل تاهرین طاهرین المعصومین سیما بقیه الله فی الارض روحی ور باقل عالمین الاهل